کتاب بهترین راهنما برای قبه بر تنبلی و داشتن یک زندگی پروار است. حقیقت است که همه ما دوست داریم هر روز بیش از پیش موفق باشیم و آنچه در ذهن داریم را به انجام برسانیم. اما آنچه به راستی اتفاق میافتد این است که عادت به تعویق انداختن کارها باعث شود با انبوهی از کارهای ناتمام که همه را به آینده مکول کرده ایم مواجه شویم. و این ما را به استیصال میکشاند و استراب حاصل از آن باعث میشود که هرگز دست به کار انجام کارهایمان نشویم با تغییر الگوی ذهنی ما به سوی یک ساختار ضد تنبلی میتوانیم بر این مشکل فائق آییم و این همان راهی است که این کتاب با مجموعه راهنمایی های ساده اما نظاممند و کارا پیش پای ما میگذارد تا هرچه بیشتر بتوانیم از زمان محدودمان بهره بگیریم